بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الشرخ الأنبياء و سيد المرسلين و آله أجمعين أما بعد فنشتا أزاركان إيمان رقون دي يقسمتي فقدت إيمان بروز آخرت من إيمان بألله إيمان بملائكه و كتابه ياسه وني بفعن برانبطه و روز آخرت وقسمتي از روز آخرت من كالعلم قام في رامون الصحبت بكون تبريم ببعث قضا أن تؤمن بالقدر خيره وشره شیخ <سيخ بن> محمد امین <عثمين> رحیمه الله در بحث اثبات روز آخرت از حس و از عقل مثال‌های قرآنی میزنه که خداوند در قرآن مثال‌های حسی محسوس، مثال‌های عقلی می‌زنه. مثال‌های محسوسی که قرآن زده، چون کلامش حقه و روح داده و با انسان باید باور بکنه. اگر باور نکنه، مؤمن به قرآن نیست. نه که تنها مومن به آخرت اسم، به قرآنی که به عنوان کتاب آسمانی از برگزیده شده است، مومن به قرآن است. اولین آیه‌ای که شروع میکنه فرموده خداوند ذو عمل الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلا وربي لا ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير خداوند شرعا اول ابتدا بعد حس بعد میگیم عقل قران داره اثبات میکنه میگه وجود نداره خداوند بلا وربي قسم به فرودگارم که میشه بس یعنی روح خواهد داد و تو بثون شما مبعوث میشید سپس از اعمالتون آگاه رایشون اونعملی که انجام دادید این از لحاظ شرع از لحاظ حس چنانچه خداوند در قران مثال میزنه مثال اولی بحث قوم موسا وقتی گفتن لن, لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر ا ایمان لم تا تو اینکه خدا را جهرتا آشکارا ببینیم و ایت قلتو میه موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وقتی که گفتید این موسی ایمان نمیام تو قبر را ببینیم بعد سائقه اومد رخ شما را قبض کرد مردید بعد صف از خداوند شما را مبعوث کرد دوباره زنده کرد بعد از مرگتون شاید اینکه شما شو باشید داشتین بدونید که مرگی هم هست و برای آخرتتون زحمت بکشید این مثالی است اون چیزی که در است موسیٰ علیه السلام روخ که با چشم خودشون دیدن و خودشون مردن و دوباره زنده شدن مثال دومی که شیخ زده اینجا قصه اون شخصی که در بریل اسرائیل کشته شده بود بعد خداوند بهشون دستور میده که گاوی را سر بزنن بعد میان ایراد میگیرن روی گاو که چه گاوی باشه چه رنگی باشه از کجا باشه و اصافشون تا اینکه خداوند بعد در قصشون میگه قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرجا ما كنتم تكتمون فقلنا اضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم اياته لعلكم تعقلون وقتی که اون شخص رو دید خدا میگه در بحث بنی اسرائیل قاتل مشخص نبود بعد خداوند این کارو کرد تا اینکه اون شخص که مرده بود سخن بگه حداکثر زنده بشه گفت خداوند این سری کارها رو انجام بدید و بچش خودتون دیدی که اون شخص زنده شد خدا میگه فقل نبروه و بالا كذلك یحیی الله الموتا هم تو که این شخص بلند رو سخنگو گفت همونطور هم خداوند مردگانو روز قیامت زنده خواهد کرد و یوریکم آیاتی لعلکم تعقلون فادت این عقلش هم به کار بیفته مثال سهمی که شیخ اینجا میزنه بحث اون اشخاصی که قرار کردن از مرگ بیرون رفتن از شهرشون، الله خسشهشون چیه دیگه؟ اصل خسشه، اینجا حیات سری آل باقر شیخ جمیاره إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوف حذر الموت. فقال لهم الله موتوا. آلم ترا إلى الذين خرجوا من شهرشون خارج شد. هزاران نفر بودن، مهم أولوف حذر الموت. با خاطر نکی از فرار بکنن. فقال لهم الله موت ثم أحیهم خداوند. مردان سپس زندشون کرد ان الله فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشكر انها مصالح محسوسا رخ داده اشخاصی هزاران نفر رو خدا کشت زندشون کرد همونطور که اینطوری شده همون طور ها در روز قیامت به ساحت شد مثال چهارم اون شخصی که از کنار روسری رد شد بعد فإنما يبدأ بقرها في يوسف وانجونه أو كالذي مر على قرية وهي صاوية على عروشها قال أنه يحييها له الله بعد موتها اختكاز تنرروا سي رأس شردت كأشخاصين مرتاً بعد ذلك كين هروا زندهم يكونوا فأماته الله مات عاماً ثم بعثه خضابان وراميران مرت بعد زنداشك بعد الثقصة زنداشك قال كم لبي قال لابدت يومن أو بعضيهم يكيوه قسم یک روزی قسمت یزد روز خوابیدم یعنی قالبا لبا السماء تعامل فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمالك وان اجعلك ايه للناس وانظر الى كيف نمشزها ثم نكسوها لحما واغرس كنها وتغش غش غش میگوشونید دیک تول و تو سخونش بتدبیب پوت شده بود اون استخوان ها دوباره جمع شد و تدبیب و اناخ و تولاق سالم خب اینها مثال های واقعی هست محسوس که رخ داده و انشاء خداوند براش ثابت میکنه که زندگانی هم هست انسان تا زندگانی هم داره و اخرین مثالی که میدونه از مثال مخصوص بحث ابراهیمه و اتقال ابراهیم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن إليك ثم جعل لكل كل جبل منهن جزء ثم ادعهن ياتينك سعي و اعلم ان الله عزيز حكيم قدام بهشتاسون میگه 4 تا مر را پرنده را برداره داره تیکه تیکه شون رو کره ورسره بذاره و سرش صداشون بزنه مورهای مختلف متفاوت خداوند این چهارتا مر را رو که صدا زد ابراهیم علیه السلام این 4 مر هر کدوم مر جداگانه اومدن با وجود که گوشتشو تیکه تیکه شده بودن بر هر هر کدومشون بر سر یک کودی بود ولی خداوند یک جا جمع کرد جلوی چشم ابراهیم تا ابراهیم ببینه از علمی یقین برسه به یقین. با چشم خودش به تدبیر بعین یقین بسه. که با چشم به خودش ببینه اینها مثال هایی است شیخ میگه مثال های حسی که رخ داده و خداوند داره مثال میزنه یک افسانه نیست یک واقعیته یک واقعیتی که رخ داده و این مثال هاش که خداوند در قرآن آورده اما دلالت های عقلی پس ما از شعر داشتیم بعد از حس داشتیم مثال هایی که رخ داده و الان هم مثال های عقلی در بحث وجود معاد و بعض اولین ای که اینجا میاره وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه مثل عقليا خدا اسكي آفريننده است براي اولين بار تا آفري شما رو وهو الذي يبدأ الخلق ابتدار شروع كرد از ثم يعيده بعد از اينكه اين از بين راب اين خلق از بين راب دوباره برش ميگردونه وهو اهون عليه يعني بار دوم راحت تر زحمت بکشم من سنگ از این و رو بر جمع بکنم یک دیواری را بالا بیارم بعد دیوار بریزه بار اول دیوار بار آوردن سختره یا بار دوم بار اول سختره و بار دوم آسانتره بار دوم آسانتره اینجا خدا یک مثال عقلی داره میزنه یک مثال عقلی مثال محسوس چیز طبیلیه یک چیزی شاید برای بار اول برای سخت باشه هر چیزی برای خداوند برای خداوند نیتی فرق نمیکنه کن تا یکونه بگه کن تا یکون میشه ولی کن از باب آبل و جدال داره میگه چی بازگش اصول از چی اصول از خلق ابتدایی از همون برای قبلی بار خلق کرده. همچنین خداوند در قرآن می که کما بداینا اول خلق نعیدو وعده انا علینا این کننا کما که اول خلق نعیدو همون که برای اول شروع کردیم شما را صحتی باز بر دیگرش ما میسازی. ثم نعیدو اما بد اول خلق نعید وعدا این نکن نفریم بعدی که ما داریم میرییم انجام مییم. بحث اعاده بازگشت عنی دوباره شما باز میگردید بر میگردید دوباره به حالت اول. مسئله خیلی مهمه. قبلا هیچی نبودیم بعد چیزی شدیم از هیچ اول به وجود مدی. جمع کردن بعد از اینکه چیزی شدن خیلی آسانتر است اینکه قبل هیچ آدم نباشه از هیچ شروع بشه. خدا میخواد اینجا بهمون که که مبدعن اول خلق نعید خدا میخواد در اینجا بهمون بگه که شما بازگشت دارید بحث بازگشته بازگشت یک همون همونطور که در اینجا این جست بوده در اون دنیا هم همین جست خواهد بود حالا شاید شخص بگه من در روز میلیون ها سلول دارم عوض می کنم تو عمرم خدا می دونه چقدر سلول عوض می کنم و کدومی که از این سلوله ها خدا میخواد جمع بکنه چطور خدا میخواد جمع بکنه این دیگه دست خود خداست چی کار میخواد بکنه چطور میخواد بکنه مثل همون شخص که گفت که اگر به رسول ها سال خبرش میگه میگه که شخص از اومتهای پیشین گفت که اگر من مردم تیکه تیکه هم بونید. بعد آتش هم بزنید قسمتی در دریا و هوا و خشکی پرتش بکنید شاید خداوند نتونه مرا جنب بکنه شک در قدرت الهی کرد و صدا صداش صدا صدا میفرمایم خداوند در روز قیامت جسد اون شخص را میاره می جسدش وقتی که بازش میکنه و میگه چرا این کارو کردیم میگه من نمیتونستم ترا جنب بکنم شک در قدرت من داشتین میگه پروردگارا ترس از ترس شد که من این کارو بکنم ترس از عذاب از یخبوت قسمتی ایمان آمیخته شده با قسمتی از کفر خداوند او را میبخشد میگه، او را وارد بهش میکنه چون به من اعتقاد داشته درسته که در یکی از افراد صفات خداوندشاره کف شده، ولی که خدا بهش عذر داشته، عذر داده. حالا شاید بهش نرسیده از کتاب آسمانی یا شاید در این قسمت عقل خودش را به کار برده. الله دیگه حساب و کتاب دست نیست. خداوند به این شخص عذر داد. همونطور که شیخ الاسلام تیمی در فتاوا جلد 28ش این حدیث صحبت می‌کنه، میگه این عذر بای وجودی که حرفش کفر با که اون عملی که انجام،, گفت که انجام بدن عمل کفری بود شک در قدرت الهی بود ولی که خدا من بهش داد خب بحث چیه؟ اینی که شک در اعاده هست رسول الله صلی الله علیه وسلم این حدیث را گفتن تا این که ما بدونیم هیچ کس نمیتونه فرار بکنه از اعاده, اعاده و بازدشتش. که دوباره باز بگرده یعنی نمیتونه فرار بکنه از این قضیه که مثلا بگه آقا من فردا روز قیامت نخواهم آمد راه گریزی نیست کما بداننا آغازش کردیم اول الاخر نعیدو دوباره بازگشت داره خب این چه ثمره در داره وقتی که خداوند اینطوری خطابو ما میکنه تو نعیدو آدم حساب کتاب معامله خودشو کرد. دروغ و غیبت و نمیدونم انسان دیگه وقتی که میگه بازگشت داری بعدم حساب کتاب بری ترازی بود بشید اصلا تلف حسابو برمی داره خداوند از باب تهدید داره میگه مشرکین شما دل به این دنیا ندارید کما بدان اول خلقت نعيده وعدا علینا این بعدی که خدا میگه من گذاشتم روی خودم ان کن فاعلین اینو انجام خواهیم داد میشود یعنی یقینا یا این آیه که خدا میگه پلی فی الی الذی اول مره یحییها الذی انشاها یحیها الذی میکند الذي انشاها اول مره اون کسی که بر اولين بار خلقت یعنی روز بس هست و به کل خلق عالی همونطور که شما میبینید زمینی زنده میشود همونطور که زمینی زنده میشود بعد از اینکه مرده بهار میاد باران میباره بد بارا زنده میشن همونطور هم انسان ها زنده میشن یک مثال عقلی هست الان بهاره رو به تابستان سبزی ها میمیرن بعد از اون پاییز میاد زمین خشک برهوتی چیزی توش نمیبینید آثاری نیست ولی سبحان الله قطراتی از باران نم نمی ببارد. از اون زمین گل میبینید بنفش گل دیگه قرمز گل دیگر میبینید زرد زمین رنگارنگ میشه خب از کجا اومدن هیچی نبود که آثاری شما برید خاک رو بگیرید بررسی میکنید با ذربین ها تا اینکه شما شاید تخمی از اون گل ها ببینید شاید آثار از اون علاقه میمونه نمیمونه ولی که امسال آینده که میاد یک شکوفایی میبینید شکوفاهایی میبینید که تعجب میکنید که از کجا بیرون اومد این همه سبزی های رنگاره این مثال های عقلی هسته خدا برد مثال میزنید در قرآن و من آیاتیه ارض خاشع یعنی زمین خاشع یعنی زمین خورش که خالی برهود فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ثم اهتزت اهل الاهتزاز بحركات زمين بحركات درنيات وربت ان الذي بدت اون ديه علف بيرو ميان شقاق فريده الارض زمين بدت لاي ان زمين جوانيه درفت بيرو مياد علفي بيرو ميان ان الذي احياها زندك ما يكون بحث مفيد احيا زنده کردنه. اون چیزی که مرده داره زنده میشه. الذي احياءها لمشي الموتال. این درختانی که دیدی که مرده بودن، علی فایت مرده بودن، احياءها. ایناللی احياءها لمشي الموتال. انه على كل شيء قدير الله بحر كريكات قادر است. فرقی نداره درخت باشه یا انسان باشه. و نزل نجويتی که خداوند و من السماء ماء مبارکه. فانبتن به جنات و حب والنخل باصقات لها طلع النضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج خد اولين مثال از یک جهتی امتنان و مننت آبروندیم از آسامون درختا سبدن نخله ها سبدن میوه بدن ثمرات بدن از از نمیدونم خوشبارهایی که شما دارید از جو و گندم طرفی از درخت و میوه ها طرف دیگه رزقا للعباد اینا همه روزی شما مننت وواه این نبینی بلتا میتر و سرزمین لیگ رو زنده کردیم و کلك از خروج همونطورم خروج شما از خلهاست. یعنی همونطورم شما شما مبوس خواهید شد. همونطوری که سر زمینین صاف بود خوش بود به طاحح قرآلی خاشع شده بود که به نهایت که ذلت هم رسیده بود که هیچی دوش نیست که این زمین به درد بخور نبود ولی که اون به درد بخور شد با زنده شدهن همونطورم شما اینطوری طورریف می میشوید. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که انکار بحث را بخارمی سوم بشریخ اومد السفان خرد و لورد کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم لحول عبردش کرد و رسول الله آیات نازل میشه در رد اون شخصی که انکار احیای مرد میکنه جاهای خداوند امتناع میبرده از این که یک معجزه دوباره تکرار بشه معجزات بوده کسانی زنده شده و صحابه دیدن یا شنیدن و مثلا من بهتون مثال میزنم خب خیلی از معجزات هست رخ داده برای پیامبران خدا مثلا برای موسی مثل اون شخصی که الان وقت قطع شده بود کشته شده بود زنده شد یا جای پیش من مثل عیسی علیه السلام در گهوار سخن بوده یک طفی خب این چنین چیزی در زمان رسولان صلی روح داده بود بعضی از چیزها ما داریم که به عنوان یک معجزه در aziyan وزشته روح داده و برای امت ما هم رخ میده ولی به نوع دیگر مثال دیگر مثال هایش رو خدا تکرار نمی یک مثال دیگر به نوع دیگر رسول اللہ صلی الله علیه و آله یه تنه درختی تنه نخلی در مسجدش یک تنه نخل بریده شده هیچ احساسی هیچ وجودی نداره ظاهرا تنه درخته خشک روشنی نیست و خودی می میخونه صحابه میگن رسول الله خیلی سخته براش بالا بره یک منبری بس کنید تا راحت بره بالا منبرو که ساختن اون تنه نخل گریه وزاری می کنه اون بی زبان اون بی احساس احساساتی میشه. میگه ما صدای امینش و حنینش شنیدیم صدای گریه وزاریش دید مسجد صحابه می گوید. خب این مثال یک زندگانی یک چیز خشکه، یک تفری سخم بگوید که زبان دارد یک شخصی زبان دار سخم بگوید یک معجزه هست اینم معجزه دیگر با نوع دیگر و شگفت. چه گفت هنگیستر که زبان نداره سخم میگه این ها مسال ها هست شخص نمیتونه انکار بکنه که قیامتی هست این صحابه وقتی که اینجوری چیز رو میبینن میتونن دیگه انکار بکنن که قیامتی نیست بعثی نیست خیر نمیتونن دیگه کسانی گفتم کسانی بی ایمان بودن که انکار کردن گفتن مثلا چطور میگید که زندگانی هست مثلا شما در قبر مثلا می بینید مثلا یک شخصی میمیره خب او رو در قبر میخوابونه بعد شما میگید در قبر عذاب میبینه حدیث هم دارید یک نبی صلی الله علیه و سلم در قبرین ترى انهما يعذبان خب دید دو شخص عذاب میکشند خب ما در قبر باز میگید عذاب نمیبینی این عذاب کجاست ما عذابی نمیبینیم الان بریم قبرستون بکنیم جهنمی میبینید اونجا یا بهشتی میبینی شما چرا میگید درهای از جهنم یا درهای از بهشت باز میشه اینا شبهات ملحدین هست منکرین بحث، منکرین معات، منکرین برزخ. خدایوندی که درباره فرعون و آل فرعون میگه و نار وعرضون علیها غدا وعشیا عذاب جهنم میشن در صورتی که جسدش مثلا حالا بعضی‌ها میگن که حالا مومیایی شده هست، بعضی‌ها میگن نیست. قران هم میگه که ما جسدش رو سالم نگه داشتیم که خدا میگه الیوم النجیک بدنک، بدنش سالم نگه داشته شده تا اینکه عبرت باشه برای دیگران. حالا ما کار نداریم گفتم ثابت بشه نشه. بحثمون اینه. آیا قرآن اثبات عذاب براشون میکنه نمیکنه؟ قرآن اثبات عذاب میکنه. حدیث هم اومده اثبات عذاب کرده و هم اثبات نعیم و خوشی کرده برای مردگان. پس این چیز قابل انکار نیست. ما نمیتونیم بیاییم با شرع خدا مقابله بکنیم با عقل خودمون با اون چیز ظاهر و محسوس. ما میخوایم وقتی که میخوایم روحمون پرواز میکنه با فلانی ملاقات میکنه با فلانی سلام علیکم میکنه. آیا این ملاقاتی که داره روش میده در عالم خواب، عالم رؤیا، آیا کسی میتونه باورش بکنه که واقعیت حقیقت باشه؟ آیا واقعاً داره روش میده یا این که نه؟ الهامات شیطان یا الهامات خدا یا خیال پررنگ های ماست؟ اشتباه واقعی نیست. شکی درش نیست جای بعضی از خواب ها هست که انسان شاید از خواب بیگر روش احساس درد بکنه. کسی میشه که دستش داده؟ یا دردشش بیسوذه؟ یا یهو تو خواب گریم میکنه خیلیا حس؟ که تو خواب گریم میکنن یا خودتون برای خودتون شاید پیش اومده تو پی خواب مثلا میبینی یک کسی دنبالتون میذره یهو، از کدوم پامیشی تپش قلبتون رفته بالا تا تا تا قلبتون میزن. خب مگه چیزی شده؟ مگه کجا بودید شما؟ چی بوده این روح؟ کجا رفته این روح؟ چرا اینجوری میشید؟ یهو مثلا قلبتون تپش میکنه. آیا ما روح را واد قبول بکنی و نکنی؟ این چیزی که آن روح در خواب، ما وتش میخوایم ناروح را دیدیم نه؟ لمسش کردیم احساسش کرده. کسی روی خودش رو لمس کردیم؟ احساسش کردیم؟ احساس مازده است. چرا وقتی که این اوز در بدل من هست راحت خم میشه؟ اینو قد بکنم. بعد از یک ساعت قابلیت خم بودن رو داره؟ کیفیت اینو داره؟ همونه. همون اوزه. تا وقتی کیفیت داره که به این روح من وصله از روح من که جدار شد دیگه هیچ کیفیتی نداره. فرقی با یک تکه استخون یک تکه شاخه درخ نداره یه کیفیت و خودش از دست میده چرا تو گرفت توش نیست روح. روحه این واقعیتی که ما داریم میبینیم حالا باستان میگن نه این علت زندگانیش اینی که به ردای خونی بهش بسله رگاه عصبی بهش بسله بذار این قد کن بذار روی یک حیون وسکو کن به اونجا و عصب اونجا به عصب یک حیون کار میکنه ببینید میتونید سر انسان رو بذارید اولاغ بیتونید پیون بزنید انسان باشه سر انسان ولی بدنش تنش باشه تن اولاغ یا تن حیوان دیگه میشه یک عالم دیگری هست خلق خلق دیگری هست نمیتونن این قضیه رو انجام بدن شاید کلیه رو پیون بدن قلبی رو پیون بدن ولی مسال روح که انسان با اون روح زنده الان مثلا نزدیک و سب ساله که تلاش دارم میکنن روی مردگانی که مغز مر... مردنشون مرگ, مغز... م... چی مرگ, مرگ مغزی شدن هی سر این رو برمیدارن روی جسد اون. جسد اون رو سر این امتحان دارم میکنن که شاید سر یک کسی روی یک کسی دیگر کار بکنه ولی هی هات که بتونن چین کاری ارجام بدن بخوان شخصیت ها رو عوض بکنند یا انسان ها رو عوض بکنند. هر کدوم از ما با توجه به روشی که در ما هست یک شخص جوهری اینجا یک شخصیت فلانی آقای کمالی آقای حسینی، آقای فلانی. هر کدوم یک شخصیت. این شخصیت نه به ازای مغزه، به ازای اون روشی که در این مغزه. خب نباید باور داشته باشیم این چیزی که ملموس نزد ما با توجه به این تفاوت هایی که در ما هست، گفتم اگر من بخوام، یعنی این مثال ها را بزنم. دبر که خداوند خودش هم جوهای مثال میزنه درباره روح برای کسانی که این کار بحث میکنن چون اینها همه مسائلی حسی اند مثلا خداوند در که الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمد في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى وقتی که انسان میخوابه روحش قبض میشه یکی روحش برمیگرده بدنش یکی دیگر نه خدا قبض روحش میکنه فيمسك التي قضى عليها الموت که مرگ خدا برشته نمیشه اون دیگه روحش بر نمیگرده و یا رسول الاخره الى اجل مسمه پس همونطور که خواب واقعیت، حقیقت انسان میخوابه روحش قرز میشه دوباره بر میگرده همونطور هم خدا میگه انسانی که مرد در قبل خوابو دوباره همون هم دوباره به جسدش برفاحت گرشد ولیکن در عالم دیگر وقتی در قبره چه عالمی؟ عالم اسم عالم برزخ ما با مسال روح رو بزنیم میتونیم مسال جن رو بزنیم جن رو هیچ کس به چش ندیده ولی خداوند ازش خبر داره کسی میتونه جن رو این کار بکنه شما نگاه بکنید حتی زرتوش به خودشون اهریمنی دارن اهورامزدی دارن به خودشون خدای شر رو خدای نیکی داره و در هر دینی شما اگر نگاه بکنید شیطانی هست قبول داره بودا قبول داره چیزی به اسم شیطان قبول داره چیزشو شیطان زرطش هم همینطور نصارا یهود یک فرقه گروهی افتاده ای که هیچ دینی ندارن شاید ندونن چیزی اسم شیطان هست ولی که تو همه ادیان ابلیسی و شیطانی وجود داره که انسان را اقوام میکنه گمراه میکنه و خداوندن در قرآن یاد میکنه از ابلیس یا بنی آدم لا یفتنن نکم شیطان کما اخرج اباویكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما خب اینجا داره مثال میزنه خداوند از ابلیس با اون کارهایی که کرد. آیا ما نباید قبول داشته باشیم، باور داشته باشیم ابلیس با اون بعدهایی که که بر خودش میگذاره لاغویان نه و الا امران نه کارهای دیگر. خب از اساس کردن. کردن، واسطه به دزدی و زنا خب اینا مثال محسوس نداره. ولی که ما مشاهده میکنیم یا نه. یعنی اون در خود نفس خودمون بسابس شیطان رو میبینی و نمیبینی بسابس شیطانی رو خوب قشنگ بینیم میخوام بیان برای طلب علم میخوام بریم سر کلاس میخوام بریم به مسجد نماز صبح کی هست که بگه بیدار نشو کی هست که بگه خوابت رو بده کی هست کی هست شب میگه تا یک و دو بیدار بشو تا که صبح نماز پا نشو نشی ایت رو مجبور میکنه با این اون مگر غیر از همون آدم و رو از بهشت خداون روند و خارجشون کرد؟ حالا با باید قبول داشته باشیم یا نه؟ باور داشته باشیم یا نه؟ واقعیت داره شک در بودن ابلیس، بودن روح و بودن عذاب در قبل نیست. همونطور که ما اینها رو باور کردیم باید باور بکنیم که اونجا هم برزخی و عذابی هم هست. صلی اللہ علی, و علی محمد و محمد.